همان روز، پس از شام بود که دسته ای آوازخانه دورگرد از شهر به آنجا آمده در باغ جلو هتل بنای آواز خواندن گذاشتند. آنها که دو مرد و دو زن بودند پای تیر چراغ ایستاده، صورتهاشان را که زیر نور چراغها سفید شده بود به طرف ایوان بزرگ و جماعتی که، آنجا با قهوه و نوشابه خنک به استراحت مشغول بودن گرفته هنرهای شان را به آنها عرضه می کردندند. خدمه هتل از مأمور آسانسور و گارسون گرفته تا کارمندان دفتری دم در و اتاقهاشان ایستاده گوش میدادند. خانواده روسی با شور و شوغی که برای لذت بردن به خرج میدادند، گفته بودند های نین برایشان در باغ بگذارند تا به هنر نمایی ها نزدیک نزدیکتر باشند فشاد و شاد و خرسند در نیم دایره‌ای نشسته بودند کنیز پیرشان هم با سراندازی دستار مانند پشت سر سروران خود ایستاده بود هنرمند با ماندولین گیتار آکاردئون و زوزه ویولونشان سر و صدا به پا می کردند. از نوای سازهاشان نوبت به آواز رسید و زن جوانتر با صدای زیر و اردکوارش به همراه صدای شیرین و واضح مرد همخانی عاشقانه و پرتمننای اجرا کردند. ولی هنرمند اصلی و سردسته گروه بدون شک مرد دیگر بود نوازنده گیتار با صدای بمی خنده آور که قدرت چندانی نداشت ولی هنر این مرد در پانتومین بود با توانایی غریبی در حرکات خنده آور اغلب با ساز بزرگش در دست از دستهشان جدا شده تا جلو جایگاه پیش می آمد که حاضران با خنده و شادمانی دلقک بازیش را پاسخ داده او را به ادامه آن تشویق می کردند به خصوص روس ها از جلو جمع حاضر از این همه جنب و جوش مدی شعف بسیار نشان می دادند و با صدای دست و فریاد شادیشان ترقیبش می کردند که بر مسخرگی و گستاخی باز هم بیفزایید آشنباخ کنار تارمی نشسته گهگاه با معجون آب انار و سودا که به رنگ سرخ یاقوتی در لیوانش برق میزد زد دهانش را تراتازه می کرد اعصابش نواهای یک نواخت و نغمات مبتزل و بار را با ولع جذب می کرد. چون جنون عشق طبع مشکل پسند را سر می کند و شخص را پذیرای همه تأثیرهایی می سازد که قبلا به تنز برگذار یا قاطعانه رد می کرده است. خطوط قیافش با جست و خیزهای آن شعبد باز از همین حالا برای تبسمی ماسیده به شکل دردآوری کشیده شده بود. با بی مبالاتی نشسته بود و در همان حال دقتی مفرت بر درونش فشار می آبرد. چون شش قدم آن طرفتر تا چیو به جانپناه سنگی تکیه داده بود لباس کمردار سفیدی را که گاه با آن سر شام حاضر می شد داشت. با دلربایی نپذیری که خود نیز به آن دامن میزد آنجا ایستاده بود ساعد چپ را بر جان پناه گذاشته بود پاها را بر هم نهاده دست راست را به لنبری که بار بالاتنه را میکشید زده بود و با قیافهای که لبخند چندانی در آن نبود بلکه تنها كنجكاوی و همرنگی از روی ادب در آن به چشم میخورد به آن آوازخانهای دور گرد فرو مینگریست گاه راست میایستاد و سینه را فراخ کرده با حرکت زیبای هر دو دست روپوش سفیدش را از میان کمربند به پایین میکشید و لیگاه نیز و این را قهرمان روبه نهادهٔ ما با سرمستی عقل نیمه مدهوش و نیز با وحشت در میافت با تعنی و احتیاط یا تند و ناگهانی که گفتی مورد حجومی قرار گرفته سر را از فراز شانه به طرف جایگاه عاشق خود میگردند نگاهش نگاه این یک را در برابر خود نمیافت چون اندیشه رسوایی مسافر پریشان خاطر را بران میداشت که جلوی نگاه بی را بگیرد خواهران مراقب تاچیو عقب ایوان نشسته بودند و کار به آنجا کشیده بود که این عاشق ترسید توجه و سوء زن آنها را جلب کرده باشد آری حتی چند بار در ساحل در تالار هتل و در میدان سن مارکو با گونه ای شگفتی متوجه شده بود که تاچیو را هر بار به او نزدیک می شود صدا می زنند. از او بر حضرش می دارند. و نسبت به خود احساس اهانت شدیدی کرده بود که دلش را به درد آورده بود. دردی که نظیرش را هرگز ندیده بود، ولی وجدانش هم آن را روا می داشت. در این آن آوازخان به همراه نوای گیتارش آوازی را شروع کرده بود. تصنیفی چند بندی که به تازگی در سراسر ایتالیا بر سر هر کوچه و خیابانی می خاندند. و او با حرکات و عداهای تجسم بخش ارزش میکرد. و هر بار به ترجیعش می رسید تمامی آن دسته با ساز و آواز همراهیش می کردند. با جسی نحیف و صورتی که آن هم لاغر و تکیده بود از دستش جدا شده کلاه نمدی را به پشت سر برده بود به گونه ای که دسته از موهای سرخش از زیر لبه کلاه بیرون افتاده بود و این چونین به حالتی که مهارت و گستاخی را با هم جمع کرده بود روی شنهایی ایستاده با زخمه مزراب بر تارهای سازش نغمات شوخیوارش را به طرف ایوان میپرند. در حالی که از تلاشی که برای هنرنمایی به خرج میداد، پیشانیش بیرون زده بود ظاهراً او از نژاد ونیزی نبود بیشتر به بازیگران ناپلی شباحت داد نیمی پاانداز و نیمی بی بیرم و نیرنگ باز، خطرناک و بامزه. آواز که محتوایش ابلهانه محض بود، در دهان او با آن قیاف که در میآورد، با حرکات بدن یا چشمک زدن و با زبانش در کنج دهان بازی درآوردنش، وضع دیگر و دو دوپهلوی پیدا می کرد که به طور نامشخصی زننده بود از یقی نرم پیراهن اسپورتش که با لباسی باب سلیقه شهری و در خور مجلس به کرده بود گردن لاغرش سر بود و سیب آدمش در آن وضعیت ناپوشیده بی بزرگ می نمون. صورت رنگ پریدش که از خطوط بیریشش به سختی میشد سنش را تخمین زد و از شکلک های بسیاری که درآورده بود و از تأثیر احتمالی اعتیاد شیار شیار و به خصوص حالت سرسختانه خیر سرانه و حتی تا حدود سبعانه دوچین میان ابروهای سرخ نمایش با نیشخند دهان پرتحرکش هماهنگی عجیبی داشت ولی آنچه توجه عمیق قهرمان تنهای ما را به خصوص به خود جلب می کرد، این نکته بود که این چهره مزنون فضای مزنونی هم حالوار گردش را گرفته با او به هر کجا کشیده میشد. بدین معنی که هر بار به ترجیع آوازش می رسید با شکلک ها و تکان دستها رو به حاضران به رقصی مسخره گرد باغ می چرخید. رقصی گام زنان که او را تا جلوی میز آشنباغ پیش می برد و هر بار که چونین می شد از لباس و بدنش بوی اسید فینیک به طرف ایوان بلند. پس از این فکاهی خانی بنا کرد به پول جمع کردن. از روس ها شروع کرد که دست و دلبازیشان را همه دیدند. از آنجا پله ها را گرفت آمد بالا. هرچه هنگام هنرنمایی گستاخی به خرج میداد، حال فروتنی می کرد. شده تعظیم کنان میان میزها میخزید و با لبخند عبودیتی مزورانه دندانهای تیزش را بیرون میانداخت. در حالی که چینهای سرخ میان ابروانش همچنان راست ایستاده بیننده را به وحشت میانداختند. حاضران این موجود غریب را که اینگونه در پی معیشت گدایی میکرد با نگاه کانچکاف و اندکی نفرت برانداز می کردند. با نوک انگشتان در کلاهش پول میانداختند، و از تماس دست خود با او پرهیز داشتند از بین رفتن فاصله جسمانی میان دلقک و اهل آداب هر قدر هم که از بازیهایش لذت برده باشند باز تأثیری مشمعز کننده از خود به جا می او این را حس می کرد و سعی داشت با خزیدنش عذر تقصیر خود بخواهد. سر میز آشنباخ هم آمد و بویش را هم با خود آورد. بویی که به نظر نمی آمد کسی از آن اندیشهای ای به دل راه دهد. مسافر تنها به صدایی خفه و به لحنی که گفتی به اراده خود سخن نمیگوید گفت گوش کن ونیز زد عفونی می شود چرا آن بازیگر پاسخ داد به دستور پلیس قانون میگوید آقای محترم در فصل گرما و اسکیلوکو این است اسکیلوکو هوا را سنگین میکند به سلامتی زیان میرسان. طوری حرف میزد که گفتی از اینکه کسی درباره این اینگونه مسائل سوال می کند در تعجب است و با کف دست نشان داد که اسکیروکو چگونه هوا را سنگین می کند. آشنباخ کاملا آهسته با کلمات جویده پرسید پس بلایی در ونیز نازل نشده. قیافه ازولانی آن بازیگر به شکل خنداوری حالت درماندهی به خود گرفت. بلا، آخر چه بلایی؟ اسکیروکو بلاست؟ شاید پلیس ما بلاست. انگار خوشتان می آید شوخی کنید. بلا، خیلی خوب، باشد. یک اقدام پیشگیرانه. متوجه اید؟ اقدام پلیس بر ضد هوای سنگین. با حرکات دست و قیافه این سخنان را میگفت. آشنباخ باز هم آهسته و به اختصار گفت: بسیار خوب. و پولی بیش از حد استحقاق دلقک در کلاهش انداخت. پس با نگاهش به آن مرد فهماند که برود او هم با نیشخند و تعظیم اطاعت کرد ولی هنوز به پله ها نرسیده بود که دو تن از کارکنان هتل بر سرش ریختند و از دو طرف نجواکنان او را زیر بار استنتاق گرفتند او شانه‌ها را بالا میانداخت قسم میخورد و اطمینان می‌داد که رازداری کرده از حرکاتش پیدا بود پس خلاص شده به باغ برگشت و پس از گفتگوی کوتاه با همکارانش پای تیر چراغ، بار دیگر برای آواز پایانی جلوی جمع ظاهر شد این آوازی بود که مسافر تنهای ما به خاطر نداشت هرگز شنیده باشد تصنیفی گستاخانه به لحجه غیر قابل فهم با ترجیح خنده آور که هر بار دار و دستش با تمام قدرت هنجرهشان او را در خواندنش همراهی می کردند. در این جریان کلمات و سازها خاموش می شدند و آنچه باقی می ماند بود که به گونهی منظم و موزون ولی بسیار هم طبیعی اجرا می شد و به خصوص خاننده اصلی به این خنده نمایشی صورت واقعی می بخشید او حال که فاصله لازم میان هنرمند و حضار والا بار دیگر برقرار شده بود گستاخیش را به تمامی باز یافته بود و خنده نمایشیش که با بیشرمی به سوی ایوان رها می کرد قه قهه بود حتی در پایان همان بخش کلامی هر بنده آوازش هم به نظر می آمد را فرو می خورد انگار بغز کرده صدایش بالا و پایین می شد دست به دهان می گذاشت شانه ها را جمع می کرد و در لحظه معین خروش خنده رها شده به صورت انفجاری از درونش بیرون میزد. با چنان حالت طبیعی که به شنوندگانش همسرایت سرایت می کند و سروری خودجوش و بدون دلیل سراسر ایوان را فرا میگیرد و همین باز گفتی بی آوازخوان خان را دوچندان می کند. زانوان را خم می کرد. با دست به ران خود می به پهلوهای خود فشار می آبرد. سعی می‌کرد خود را برهاند دیگر نمی‌خندید فریاد می‌زد با انگشت به بالا اشاره می‌کرد که گفتی مزهکتر از آن جماعت خندان یافت نمی‌شود تا به خنده همه جا را از باغ گرفته تا ایوان فرا می گرفت و حتی به گارسونها و مأمورین آسانسور و خدمتگارانی که بر آستانه درهایی ایستاده بودن نیز، سرایت میکرد. آشنباخ دیگر در سندلیش قرار نداشت. راست نشسته بود. گفتی برای دفاع یا فرار آماده میشود. ولی قهقه بوی دوا که با جریان هوا به بالا میوزید و حضور پسرک زیبا به صورت رؤیایی در هم به گونه گریز گریزناپذیری افکار و حواسش را در جادوی ناگسستنی خود گرفته بود در آن جنب و جوش همگانی به خود جرأت داد نگاهی به سوی تاچیو بیندازد. پس خوشحال شد که میبیند آن زیبا پسر نیز در پاسخ نگاه او همچنان وقار خود را از دست نداده، گفتی حالت و قیافه این یک را به خود می گیرد و فضای همگانی ایوان حال که این یکی خود را از تأثیرش بیرون نگه داشته، تأثیری در او نمی این تقلید کودکانه و پرمعنی چنان او را از پای درآورد و قدرت پایداری را از او سلب کرد. که نویسنده خاکستری موی به زحمت توانست جلو خود را بگیرد و صورت خود را در دست ها بپوشاند. و نیز چونین به نظرش آمد که گفتی سربلند کردن گاه به گاه تا نه برای نفس کشیدن راحت بلکه برای آه کشیدن و از گرفتگی دل بوده است. بار دیگر با خود گفت این پسر رنجور است، تا حد بیمار گونه ای رنجور است، احتمالاً عمر زیادی نخواهد کرد و این را با دقت و بیطرفی اندیشید که گاه به گونه ای شگفت انگیز از مستی و شیفتگیده است میدهد و نگرانی دلش را کند که با خوشنودی ها میخته در این بین مطربان ونیزی کارشان را تمام کرده از آنجا میرفتند جم با دست زدن خود آنها را بدرقه می کردند و سر دسته خانها هم از اینکه در خاتمه وداعشان را با شوخیهایی زینت بخشد، کوتاهی نکرد. تعظیم و بوس پرانیهایش با خنده جمعیت پاسخ داده شد. پس او هم تکرارشان کرد. وقتی همدار و دستش بیرون بودند، او چنان وانمود کرد که گفتی از حساسیت در برابر تیر چراغ واپس میدود و به ظاهر از درد به سوی در هتل خزید. و دست آخر آنجا نقاب سرفکندگی را از چهره برداشت، قد راست کرد. میتوان گفت برافراشت. برای حاضران در ایوان وقیهان زبانک انداخت و در تاریکی ناپدید شد. میهمانان هتل ساحل از هر طرف پراکنده شدند. تا چیو دیگر مدتها بود که از پای تارمی رفته بود و آنچه موجب تعجب گارسونها شد مسافر تنهای ما هنوز تا مدتی پشت میز کوچکش با گیمانده ماجون آب انارش سر کرد شب به نیمه نزدیک میشد زمان فرو می خزید. سالها پیش از این در خانه آنها ساعت شنی بود چنان بود که گفتی ناگهان این دستگاه شکننده و پرمعنی بار دیگر در برابرش ظاهر شده. شن رنگ شده سرخ نرم و بی صدا از میان شیار شیشههای باریک میگذشت و چون به بلندی رسیده به سرازیری میافتاد تاس لغزنده کوچکی پدید می‌آمد.